شب سوم پس از نماز مغرب آقایان علما و حاضران تشریف آوردند و پس از پذیرایی جلسه حالت رسمی به خود گرفت در کتاب اخبار و دعاهای شما مطالب کفرامیزی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان کفرشی ایان را اثبات کرد جناب حافظ خوب است بعضی از این مطالب را بیان کنید تا ببینیم کجای آن شرک و کفر است زمنان فکر می کنم شما تا به حال در مطالب کتاب خودتان دقیق مشدید تا کفریات آن را ببینید اگر در کتاب سه خودتان دقت کنید انقدر مطالب نادرست در آن دیدید که دیگر در مورد کتابهای ما چیزی نمی نمیگفتید حرفهای شما نادرست است شما به چه حقی به کتابهای معتبر ما اهانت میکنید آیا نمیدانید دانید که کتا کتابی به عظمت کتابهای صحیح بخاری و صحیح مسلم نیامده است این دو کتاب اساس مذهب اهل سنت پس از قرآن مجید است که مورد قبول تمام امت است اینکه میفرمایید این دو کتاب مورد قبول تمام امت است حرف است، چون بیش از صد میلیون شیعه که جزء امت هستند، این کتاب را قبول ندارند. فکر میکنم این امتی که میگویید مشابه اجماع امت پس از وفات نبی اکرم برای تعیین خلیفه باشد. آنچه من میگویم با دلیل و برهان است. حال بعضی از مطالب این دو کتاب را میگویم تا خودتان قضابت کنید. بفرمایید حضرت آقا. در صحیح بخاری حدیثی از طریق ابوهریره به رسول اکرم نسبت داده شده است که در روز قیامت خدا به صورت خاصی ظاهر می شود که آدمیان می توانند او را ببینند. سپس می فرماید من پروردگار شما هستم. مؤمنان عرض می کنند پناه به خدا می بریم که تو خدای ما باشی. ما گروهی نیستیم که غیر از خدای را عبادت کرده باشیم. خدا در جواب آنها میگوید آیا بین شما و خداوندتان نشانهی هست که به وسیله آن او را بشناسید؟ میگویند آری پس خدا ساغپای خود را برهنه کرده و به آنان نشان می دهد. در این هنگام مؤمنین سر خود را بالا می کنند و خدا را به همان شکلی که قبلا دیده بودند می بینند و اقرار می کنند که تو خدای مایی. شما را به خدا آیا این حرفها ها خلاف نصد قرآن نیست؟ آیا خدا در آیه 143 سوره عراف رؤیت خود را صریحا نفی نکرده است؟ علی کرم الله وجههو فرموده است خداوندی را که نبینم بندگی نمی کنم. پس معلوم می شود که خداوند را می تواندید شما فقط بخشی از این حدیث را خاندید اگر اجازه دهید من تمام آن را میخوانم تا خودتان مطلب را درک کنید. امام صادق علیه السلام میفرمایند یک عالم یهودی به امیر مؤمنان عرض کرد آیا تو در هنگام عبادت خدایت را میبینی؟ حضرت فرمودند خدایی را که نبینم عبادت نمیکنم. عرض کرد چگونه او را میبینی؟ فرمود خدا را با چشم سر نمی بینم. بلکه با چشم دل می علاوه بر تمام این مطالب علمای خودتان ثابت کردند که دیدن خدا محال عقلی است و این عقیده کفرامیز است آیا باز هم دلیل می‌خواهید؟ خیر کافی است از ابو در همین کتاب‌های به اسطلاح معتبر شما نقل شده است که روزی حضرت موسی به کنار آبی رفت تا قصد کند آن حضرت لباسهایش را درآورد و بالای سنگی گذاشت. در این هنگام سنگ به حرکت درآمد و به همراه لباسها شروع به دویدن نبود. حضرت موسی به دنبال آن میدوید و می ای سنگ لباسهایم را کجا می موسی بدون پوشش مناسب به دنبال سنگ میدوید دوید که مردم عورت او را دیدند و اقرار کردند که فتح داشتن موسی تهمتی بیش نبوده. سنگ ایستاد و موسی لباسهایش را برداشت و سنگ را با تازیانه زد. به صورتی که آن سنگ شش یا هفت مرتبه ناله کرد. نادرستی این مطلب و این حدیث به قدری روشن است که نیاز به توضیح ندارد. بگذارید حدیث دیگری که از کتابهای معتبرتان است نقل کنم. در هنگام قبض روح موسا آن حضرت یک سیلی محکم به گوش ملک الموت نواخت. به گونه ای که چشم او کور شد. از آن به بعد ملک الموت مخفیانه برای قبض و روح افراد میآمد تا دیگر سیری نخورد. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> البته من از ابوهریره تعجب نمی کنم بلکه از کار شما تعجب می کنم که پس از دیدن این همه مطالب جعلی باز این کتب را صحیح ترین کتاب ها بعد از برآن میدانید. در کتاب های شما نیز از این دست کفریات بسیار دیده می شود. مثلا؟ از بدیهیات دین ما این است که در هیچ ای برای خدا شریک قائل نشویم در کتب عدیه شما مکررن از غیر خدا طلب حاجت می شود و این یک نوع شرک واضح و آشکار است. اول شما معنای شرک را بگویی تا بعد پاسختار را بدن. مطلب واضح است. کسی که خدای یکتا را قبول دارد. در صورتی که از غیر خدا حاجت به خواهد مشرک است، همچنین نظر برای غیر خدا شرک است، بسیاری از شما برای امامان و امامزاده هایتان نظر این شرک نیست؟ در کتابهای فقهی ما برای دادن نظر دو شرط اساسی بیان شده است که اگر یکی از این دو شرط نباشد، نظر باطل است. شرط اول اون است که نیت نظر برای خدا باشد و شرط دومان است که سیغه نظر خوانده شود و تا نام خدا در سیغه برده نشود نظر محقق نمی شود. مثلا نظر می کند اگر حاجتش برآورده شود گوسفندی را برای خدا در حرم امام یا امامزاده قربانی کند. خب کجای این عمل شرک است؟ حاجت خواستن از غیر خدا شرک است. اگر حاجت خواستن از غیر خدا شرک است که در این صورت همه عالم آدم مشرک هستند آیا انبیا از مردم کمک نمی گرفتند آیا حضرت سلیمان برای آوردن تخت بلقیس از مردم و مخلوقات دیگر کمک نخواست آیا شما برای رفع نیازهای روزمره از مردم کمک نمی گیرید وقتی که ما میگوییم یا علی ادرکنی در حقیقت برای توجه به خدا از ایشان کمک می گیرید؟ چرا شما شیعیان به دنبال وسیله هستید؟ چرا مستقیما از خود خدا حاجت طلب نمی خواهی مستقیم از خدا نیز مورد توجه ما هست. ولی اینکه چرا ما دنبال وسیله هستیم مربوط می شود به دستوری که خداوند متعال در آیه 35 سوره مائده به ما مؤمنان داده می بینید که ما طبق دستور رسول خدا خاندان آن حضرت را وسیله تقرب خود به سوی الله می دانیم. در کجا پیانبر چون این دستوری دادند؟ ابن عبدالحدید نقل میکند که حضرت زهرا سلام الله علیه فرمود حمد میکنم خدایی را که از پرتو نور رحمتش اهل آسمان و زمین بندگی می و ذات اقدس او هدف تمامی وسائل میباشد. باشد و ما وسائل در میان خلق و نیز در حدیث معروف سغله این که در منابع معتبر شما موجود است از قول رسول اکرم آمده است که اگر به اطرت من متمسک شوید هرگز گمراه نخواهید شو. تصور میکنم اشتباه میکنید سند حدیث ثقل این صحیح نیست چونکه بخاری در صحیح خود آن را است. نه نخیر اشتباه نمیکنم. درستی اسناد این حدیث به قدری مسلم و محکم است که حتی ابن حجر متأثر مینویسد این حدیث از طریق 20 نفر از اصحاب رسول خدا نقل شده است اگر هر حدیثی که بخاری نقل نکرده غیر صحیح است این فرمایش شما توهین به کتابهای دیگرتان است علت این عرض منان است که بخاری در نقل حدیث بسیار محتاط بوده و احادیث ضعیف را نقل نکرده است اصلا و ابدا ایشان هر که میشنیده اگر با عقایدش هماهنگ بوده نقل میکرده. و چنانچه همه هنگی نبوده، آن را کنار میگذاشته. <تصفيق> ابو هره حدیث سغلین را با قید کتاب الله و سنتی نقل نموده است. این گفته های ابو از درجه اعتبار ساقت هست. زیرا با نقل‌های مشهوری که توسط اده کسیری از علمای خودتان مطرح شده تضاد دارد. زمنان این را هم اضافه کنم که نقل ابو با مبانی عقلی هم ناسازگار است، زیرا مبین قرآن نمیتواند چیزی باشد که خودش نیاز به مبین دارد. خود سنت احتیاج به مبین دارد پس چگونه ممکن است که مبین قرآن باشد؟ و اما یکی دیگر از دلایل ما در جواز توسل به اهل بیت حدیث بسیار معروف و معتبر سفینه است که بیش از صد نفر از علمای شما به آن اقرار دارند. رسول خدا صلی الله علیه و و سلم فرمودند جز این نیست که اصل اهل بیت من در میان شما مسئله کشتی نوح هست. هر که بران سوار شود نجات می‌یابد و هر که از آن سرپیچی کند هلاک می‌شود نکته دیگر الان یادم آمد در تاریخ ثبت است که خلیفه دوم هم متوسل میشده. پس بنا به قول شما خلیفه دومتان هم مشرک و غیر موحد است یعنی چه این اولین است که چون این حرفی را می شنبم. در کجا خلیفه عمر چون این کاری مرتکب شده است؟ بخاری از قول عمر نقل کرده که می گفت پروردگارا ما به وسیله عموی پیامبرت به تو توسل می جویم تا به ما باران بدهیم. آیا شما کاسه دکتر از آش شده اید؟ بدونید که واقعیت غیر از اون است که شما می گید. استدعا دارم از این حرفتان توبه کنید و این رو بدونید که شیعه آل تیامبر را خدا نمیداند. بلکه اونها را آبروی درگاه باری تعالی می داند و ایشان را واسطه بین خود و خدا قرار میدهد. این صحبت شما با آنچه که قبلا شنیدم جور در نمیآید. آنچه شنیده ای را دور بریزید و از آنچه می بینید صحبت کنید شما تا به حال کتاب دعای ما خوانده نه متاسفانه دسترسی نداشتم خب نیکو بود ابتدا نگاهی به این می انداختید سپس اشکار گرفتید الان دو کتاب دعا همراه دارم که میتوانید ببینید بفرمایید در این لحظه از جلسه جناب سلطان کتاب های دعا را به علمای اهل سنت میدهند. ایشان دعای توسل را خواندند و به وضوح مطالب جناب واعظ را در آن یافتند در این بین بعضی از اهل سنت حاضر در مجلس از مزامین دعا متعجب شدن یا و الله اشفع لنا فعلنا یا سادتی و موالیه اینی توجه تو بکن امتی قدرتی لیوم فقری و آجتی علی الله و توسلتو بکم علی الله و تشفعتو بکم علی الله فشفولی عند الله و سنگذونی من ذنوبی عند الله بکوم و تیل تیل الله، با بهبود بکوم، با بهگر ارجو نجات من الله، تکونو عند الله رجایی، یا صادقی، یا اولیاء الله. صلى الله عليه جميعاً فلا الله عدا الله ذالبي من الأب لليناء بالآخرين آمين رب العالمين میبینید که محتوای این دعاها چیزی جز توحید و یکتا پرستی نیست شما علمای اهل سنت با تهمت زدن به شیعان و تحریک احساسات مردم متحصب آنان را از راه خدا منحرف می کنید آیا این کار است که برخی از علمای شما شیعیان را مورد اهانت قرار می دهند؟ کم لطفی می کنید کدام یک از علمای ما چون این کاری کرده است؟ رازی در کتاب خود هر جا که از ما یاد می می‌نویسد و امر رفضل انهم الله اتفاقا برای خودم اتفاق بیش آمد که شنیدنیست از بیت المقدس آزم دمشق بودم جهت ادای نماز وارد مسجد جامع شدم به گوشه ای رفتم و نمازم بعد از نماز متوجه نگاه خشگین عالمی که مشغول قراعت قرآن بود شدم. از مسجد خارج شدم. منتظر حرکت ماشین بودم که صدای نماز نمازشا بلند شد. با این فکر که ممکن است ماشین برای ادای نافلی شب توقف نکند، وارد مسجد شدم. از درب آخر شبستان وارد شدم. بعد از تمام شدن نماز اشهای اهل تسنن، همان عالم برای مردم سخنرانی میکرد و میگفت مشرکان نجس هستند. آنها را به مسجد راه ندهید. اندکی قبل یک مشرک به مسجد آمده بود و در مقابل شما بر بطی سجده می کرد. شما که نمرده بودید چرا او را نکشتید؟ به قدری احساسات مردم را تحریک کرد که اگر من آنجا بودم قطعا کشته می شدم. بعد از سخنرانی عده‌ای از مردم متوجه حضور من شدند تا چشمشان به من افتاد مرا به باد کتک گرفتند و می‌گفتند ای مشرک برو بیرون از زنده‌ماندن خود معیوس شده بودم تا اینکه به تشخد نماز رسیدم با گفتن تشهد نماز در بین آنها اختلاف افتاد که این دیگر چه مشرکی است که به وحدانیت خدا و نبوت رسول اکرم شهادت می‌دهد نمازم که تمام شد شروع به صحبت کردم به آنها را مقلوب و آن عالم از خدا بی خبر را تفرق انداز و اختلاف افکن بین مسلمانان معرفی نمودم. ایشان از من از کرده و برخی از آنان مرا به منزل خویش دعوت میکردند. این یک نمونه از حدها نمونه است که در آن علمای شما باعث تحریک احساسات عوام علیه شیعیان مبهد و خدا پرست می گردند. ما که تقصیری نداریم، این شما هستید که باعث تحریک اهل سنت می شوید. چگونه؟ شیعیان مرده پرستی می کنند. روزی هزاران شیعه در مقابل قبور صورتشان را روی خاک می گذارند و سجده می کنند. آیا این کار شرک نیست؟ وقتی مردم پاک اهل سنت این حرکات را می‌بینند، تحریک می‌شوند. در این هنگام جناب شیخ عبدالسلام که یکی از کتاب‌های عدیه را ورق میزد تا به موردی دست یابد و آن را علیه شیعان به برد سرش را بلند کرد و همچون کسی که وسیل ای مهم را به چنگ آورده است رو به جناب واعز کرد و وارد بحث شد. بفرمایید آقای گرامی در این مورد چه میگویید چه موردی قربان علمای شما دستور دادند که پس از زیارت زائر دور عکد نماز زیارت به جا برد آیا نماز برای امام و رو به قبر او شرک نیست این در کتاب خودتان موجود است چون خیلی از شب گذشته و ممکن است آقایان خسته شوند پیشنهاد میکنم جوابتان را فردا شب تحویل بگیرید. ما از نمی تا جواب جناب شیخ ما بدهید. آره. چون جناب شیخ ما بسیار داغ هستند و حربه بزرگ را تهیه کردند، اگر جناب حافظ اجازه بفرمایند ابتدا جواب ایشان را بدهم و بعد پاسخ شما را به محضرتان عرض کنم. جناب شیخ. بفرمایید ببینم آیا تا به حال به زیارت رفتید و اعمال شیعیان را از نزدیک دیده نه خیر؟ پس از کجا می‌گویید شیعیان رو به قبر امام نماز می‌خوانند؟ از روی همین کتاب آقا. جناب واعظ کتاب را می‌گیرند و به محل مورد اشاره جناب شیخ نگاه می‌کنند. از حسن تصادف زیارت علی علیه سلام من این قسمت را رو از روی کتاب می خوانم، خود شما غذابت بفرمایید می نویسد بعد از تمام شدن زیارت شش رکت نماز خوانده می شود دو هدیه به امیر المؤمنین دو هدیه به حضرت آدم و دو هدیه به حضرت نو که در جوار قبر آن امام عظیم الشأن مدفونند. حال بفرمایید آیا نماز هدیه شرک است؟ و ما در ادامه آمده زائر پس از نماز رو به قبله بهشتد و دعای زیر را بخواند: خدایا برای تو نماز را خواندم، زیرا برای غیر تو نماز جایز نیست. عجیب است مگر اینجا نوشته نشده که زائر عطبه را ببوسد و وارد حرم شود. شیعیان که به درب حرم امامان خود میرسند سجده میکنند. آیا این اول عمل نیست؟ اگر من جای شما بودم بعد از شنیدن این جواب منطقی سکوت میکردم. اولا بوسیدن با سجده کردن فرق دارد. خدا را گواه میگیرم که وقتی به دیدن قبر ابو هنیفه رفته بودم و میدیدم که سنی ها از روی محبت به خاک می افتند اصلا چون این قضاوتی نمیکردم. ثانیا این را بدانید که سجده اگر بدون نیت عبودیت باشد شرک نیست، مانند سجده برادران یوسف و سجده ملائکه بر حضرت آدم، نتیجه این نگاه سطحی این است که باید به خود ذات مقدس خداوند که دستور فربود ملائکه بر حضرت آدم سجده کنند نیز اشکال وارد شود چرا روی چنین تفکر سطحی و غلط که تا این حد مشکل ساز است پافشاری میکنید و حاضر نیستید از فکر دیگران استفاده کنید و اما جواب جناب آقای حافظ مگر شما آیه 169 سوره آل امران را نخوانده اید که گفته ولا تحسبن سبن قتلوا سبیل الله انواد بل احیان عند ربهم هم یرزقون. اگر ما در مقابل قبور اعمه میستیم و حرف میزنیم با مردگان تکلم نمی کنیم بلکه با زندگان حقیقی راز دل نگوییم. از نظر ما و از منظر خداوند متعال حضرت امیرالمومنین و حضرت سیدالشهدا که جان خود را در راه دین فدا کردند تا بنی امیه و یزید پلید نتوانند اساس دین را از بین ببرند زنده هستند و حرفهای ما را میشروند و وسیله تقرب ما به پروردگارمان هستند باز هم تکرار می کنم، اگر عمق تفکرات خود را افزایش دهید هرگز دچار این شبهات نمی‌شوید. من از شما در عجبم. طبق کدام ملاک شرعی به خلیفه مسلمانان یزید ابن معاویه اهانت کنید؟ این کار شما توهین به تمام مسلمانان و خلفای قبل از ایشان است که او را به خلافت منصوب کرده‌اند. آیا انجام یک گناه صغیره که قتل حضرت حسین بوده و البته بعدا هم توبه کرده، به شما این جرأت را داده که به ایشان اهانت کنید؟ اصلا انتظار این مقدار تعصب را در این محفل علمی نداشتم. آیا به نظر شما قتل فرزند رسول خدا و یارانش یک گناه سقیده است؟ آیا به اسارت در آوردن دختران پیامبرتان فقط یک گناه کوچک و ناچیز است؟ علاوه بر این نشانه ها مگر شما اشعار کفرامی او را نکنده اید؟ سرور من خواهش می کنم دلایل کفر یزید را برای ما بیان کنید. یزید پلید در بسیاری از اشعارش منکر خدا و و نشر شده است این جرسومه بیدینی در مجلس جشنی که برای شهادت امام حسین علیه السلام برپا کرده بود اشعاری خوانده که در آن منکر نبوت پیامبر عظیم و اسلام شده او در دومین سال حکومت خود به مدینه حمله کرد و قتل عام وسیعی انداخت و در سومین سال حکومتش کعبه را به منجنیق بست اینها را که فرمودید فقط میتواند فسق یزید را ثابت کند نه کفر او را آیا انکار مبدع و معاد کفر نیست آیا قتل سید جوانان اهل بهشت ظلم آشکاری نیست آیا نمیدانید که خداوند متعال در قرآن ظالمان را لعن فرموده است در صحیه بخاری و صحیح مسلم از رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم روایت شده کسی که اهل مدینه را از روی ظلم و ستم بترساند ملعون خدا ملائکت و مردم است در این هنگام به دلیل نزدیک شدن از آن صبح جناب واعز مجلس را ختم فرمودند Bye. Oh.